و دریافتند که در آن روز هیچ راه گریزی ندارند لا الانسان من دعاء الخیر و مسه الشر فیعوس قنوط انسان هرگز از طلب خیر و نیکی خسته نمی شود و اگر شر و بدی به او برسد مأيؤس فنا أُمِيد مِشَبَطَ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَ مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّهَا ذَلِي لَيَقُولَنَّهَا ذَلِي وَمَا أَظُنُّ ساعة قائمه و لا إرجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئ أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ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 و هرگاه بر انسان خیر و نعمتی عطا نماییم، روی می و متکبران از حق دور می و هرگاه شر و بدی به او برسد پس دعا و, و تقاضایش برای دفع آن افزون می شود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 چه کسی گمراه تر خواهد بود از کسی که با آن در مخالفت شدید و دور است؟ فنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق،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 الا انهم في مريته من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط اغاه باش كانها از لقای پروردگارشان در شکند و آگاه باش که او به همه چیز احاطه دارد بسم الله الرحمن الرحیم آمین ح ع لِكَي <تصال> يُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ پیروزمند و حکیم به سوی تو و پیامبرانی که پیش از تو بودند و اهمی کند له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلي العظيم. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه بزرگ است. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض الا ان الله هو نزدیک است که آسمانها به خاطر عظمت الهی بر فراز یک یکدیگر شکافته و متلاشی شوند و فرشتگان به ستایش پروردگارشان تسبیح می‌گویند و برای کسانی که در زمین هستند آموزش می‌طلبند آگاه باش همانا خداوند آمرزندهٔ مهربان است والذین اتخذوا من دونه أولیاء الله حفیظ علیهم وما أنت علیهم بوكیل و کسانی که جز او دوستان و سرپرستانی گرفتهاند خداوند بر آنها نگهبان و مراقب است و تو ای پیامبر متعهد و مسئول بر آنها نیستی و كذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها لِتُنذِرَ أُمَمَ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ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 الله لجعلهن امه واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير خدا میخواست یقینا همه آنها را یک امت قرار میداد ولی کن هر کس را که بخواهد در رحمتش داخل می کند و برای ستم کاران هیچ یار و یاوری نیست ام اتخذو من دونه اولیاء فالله هو الولی وهو هو یحیی الموتا وهو هو علا قدیر آیا آنها جز او دوستانی برای خود برگزیدهاند؟ اند؟ در حالی که الله فقط کار ساز و دوست حقیقی است و اوست که مردگان را زنده می و اوست که بر هر چیزی تواناست و مختلفتم فیه من شیء فحکمهو الله ذالکم الله ربی علیه توکلت و انیب و در هر چیزی که در آن اختلاف کنید پس حکم و داوری آن با الله است این الله پروردگار من است بر او توکل کردم و به سوی او باز می گردم.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 و از خودتان برای شما همسرانی قرار داد و نیز جفتهایی از چهار پایان آفرید شما را بهدین وسیله افزون می‌کند. هیچ چیز همانند او نیست و او شنوای بیناست له مقالید السماوات والارض يبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اینهو بکلی شیئن علیم کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست روزی هر که را بخواهد گسترش می دهد و برای هر کس که بخواهد تنگ می به درستی که او به همه چیز داناست شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من را برای شما تشریع کرد از همان گونی که به نوح توصیه کرده بود و از آن چه بر تو وح کردی و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم که دین را بر پا دارید و در آن فرق فرق نشوید بر مشرکان گران است آنچه شما آنها را بدان دعوت می کنید. خداوند هر که را بخواهد برمیگزیند و هر که به سوی او باز گردد هدایت می کند.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 بعدیما است جیب له حجتهم داحضه حجتهم داحضه عند ربهم و عليهم ضب و لهم عذاب شديد و کسانی که در خداوند مهاجم میکنند پس از آنکه فرمان او پذیرفته شد دلیلشان نزد پروردگارشان باطل و بیاساس است وخشم خداوند بر آنهاست و عذاب شدیدی برای آنهاست الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعه قريب خداوند کسی است که کتاب و میزان را به حق نازل کرد و تو چه میدانی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 من كان يريد حرث الاخره نجد له في حرثه ومن كان يريد حرس الدنیا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب كسي کشت آخرت را بخواهد در کشت او برکت میدهيم و می و کسی که کشت دنیا را بخواهد از آن به اومی دهیم و او در آخرت هیچ نصیب و بحر ای ندارد ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضی بینهم و الظالمین لهم عذاب علیم. آیا مشرکان معبودانی دارند که بدون اجازه خداوند آینی برای آنها مقرر داشتند و اگر بعد فیصل بخش نبود یقینا در میان آنها داوری میشد و و بیگمان برای ستمکاران عذابی دردناک است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 این همان فضل و بخشش بزرگ است. لَکَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى و من حسنة حسنتا نزد لهو فیها حسنا این الله غفور شکور این همان است که خداوند بندگانش را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند به آن مجده میدهد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 و حق را با سخنان خیش محقق و پا برجا میسازد بی گمان او به راز سینه‌ها آگاه است و او الذی عن عباده و عن و, و کسی است که از بندگانش توبه میپذیرد و از بدیها میگذرد.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 و از فضل و چرم خیش آنان را افزون می دهد و برای کافران عذاب شدیدی است. ولو لو بتطالله الرزق لعبادهی لبغو فی الارض ولیکن ینزل بقدر ما یشاء اینهو بی خبیر و اگر خداوند روزی را برای بندگانش فراخ و گشاد می‌گرداند، یقیناً در زمین فساد می‌کردند، بلکه به انداز ای که بخواهد نازل می‌کند، بیگمان او به بندگانش دانای بیناست. و هو الذی نزل الغیث من بعد ما قنط رحمته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 و من آیاتهی خلق السماوات والارض و ما بست فیه ما من دابه و هو علا جمعهم اذا یشاء های او آفرینش آسمانها و زمین هست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 و شما هرگز در زمین آجس کننده نیستید و نمی توانید از او بگریزید و شما را غیرت خدا هیچ یار و یاوری نیست. و من و از نشانه های او کشتی هایی است که همچون کوه در دریا روانند این یا شاء يسكن الريح فيضل النراكد على ظهره ان في ذلك لا آیات لكل شکور اگر بخواهد باد را از حرکت باز میدارد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 و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص و کسانی که در آیات ما مجادل می بدانند که هیچ گریزگاهی ندارند فما اوتیتم من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 و جزاء سیئت, سیئت مثلها فمن عفا و اصلح على الله اینه لا يحب الظالمين. و جزای بدی است همانند آن پس هر کس که در گذارت و اصلاح و آشتی کند، پاداشش بر خداوند است بیگمان او ستمکاران را دوست ندارد و انتصر بعد الظلم فاولئك ما عليهم من سبیل و کسی که پس از ستمی که بر او رفته است انتقام بگیرد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 و در زمین به ناحق سرکشی و ستم می کنند اینانند که برایشان عذابی دردناک است ولمن صبر و غفر ذلک لمن عزم الامور و کسی که شکی باعی کند و درگذرد بی گمان این از کارهای سترگ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَ الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ وَكَسِی رَا كِهِ خُدَا گمراه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 وَتَرَا هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم و آنها را بینی که بر آن عرض می شوند که از شدت خاری خاشند از گوشی چشم نیم گشود نگاه می کنند. و کسانی که ایمان آبرده اند بیگمان زیانکاران کسانی هستند که در روز قیامت خود و خانواده خیش را به زیان افکندند آگاه باشید که ستمکاران در عذابی دائم خواهند بود و ما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من یضلل الله فما له من سبیل و آنها جز خدا یاورانی ندارند که یاریشان کنند و بسیاری را که خدا گمراه سازد پس برایش هیچ راه نجاتی نیست استجیبوا لربکم وبَل لَّىٓ أَن يَأْتِيَ را اجابت کنید پیش از آنکه روزی فرار رسد که از جانب خدا راه بازگشتی در آن نیست، در آن روز پناهی نخواهید داشت و هیچ مدافعی ندارید. فَإِنْ فما فَمَا أَرْسَلْنَا كَعَلَيْهِمْ حَفِيظًا اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ و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 بیگمان انسان بسیار ناسپاس است لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناسا ويهب لمن يشاء النكور فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست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 یا پسر و دختر هر دو با هم میدهد و هر کس را که بخواهد عقیم میگرداند بیگمان او قادر است وما كان لبشر أن یکلمه الله إلا وحیا أو من وراء حجاب أو یرسل رسولا او یرسل رسولا فیوحی بی اذنه ما یشه انه علی حکیم و برای هیچ بشری ممکن نیست که خدا با او سخن بگوید مگر با وح یا از پس پرده یا رسولی بفرستد که به فرمان او را بخواهد به او وح کند وی گمان او بلند مرتبه حکیم است و کذالک اوحینا روحا من امرنا ما تدري ما الكتاب ولا ایمان ولیکن جعلناه نورا مهدی به من نشاؤ من عبادنا و این نکل تهدی صراط مستقیم و این گونه بر تو ای پیامبر روحی را به فرمان خود بحی کردیم تو پیش از این نمیدانستی کتاب و ایمان چیست ولی ما آن را نوری قرار دادیم با آن هرکس از بندگانمان را که بخواهیم هدایت می کنیم. و مسلما تو ای پیامبر به راه راست هدایت می کنی. صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما في الارض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 بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشندی مهربان ح ها. و الكتاب المبین سوگند به کتاب روشنگر این بیگمان بی ما این كتاب را قرآن عربی قرار دادیم شاید که شما آن را دریا بید وَإِنَّهُ فِي أُمِّي الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌ حَكِيمٌ و به راستی که آن در ام کتاب نزد ما بلند مرتبه و حکمت آمیز است اف نضرب عنکم الذکر صفحه ان آیا بدان سبب که شما مشرکان گروهی اسراف کارید اعراض کنان این پند را از شما بگیریم و کم ارسلنا من نبی فی الاولین چه بسیار پیام برانی که برای هدایت به میان پیشینیان فرستادیم و ما یعکیه من نبی الا کانو بهی یستهزئون و هیچ پیامبری به سوی آنان نیامد مگر اینکه او را مسخره و استهزا میکردند فاهلكنا اشد منهم بطشوا ومضى مثل الاولين پس ما کافرانی روماند تر از اینها را هلاک کردیم و داستان پیشینیان گذشت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 الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تحتجون. همان کسی که زمین را برای شما بستر قرار داد و برای شما در آن راه های قرار داد باشد که هدایت شوید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 شما نیز این گونه پس از مرگ از گورها بیرون آورده میشوید والذی خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون و آن كسی که همهٔ اسناف را جفت آفرید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 وگر ما توانایی آن را نداشتیم و انا الى ربنا لمنقلبون و ما به سوی پروردگار من باز می گردیم و جعلو له من عباده اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مبین و آنها برای او از میان بندگانش جزئی قرار دادند بیگمان انسان ناسپاس آشکاریست اَمِتَّخَذَ مِنَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَخْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ آیا از میان آنچه می آفریند دختران را برای خود انتخاب کرده است و پسران را برای شما برگزیده است؟ وإذا اذا بشر احدهم بما ضرب لرحمن مثلا ظل وجهه مسودا و هو كظیم.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 آیا پیش از این قرآن کتابی به آنان داده ایم پس آنان به آن تمثب می بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی و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 نذير إلا قال مطرفوها إلا قال وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتد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 قال اولو جئتكم باهدا من وجدتم عليه اباءكم قالوا ان ما ابسلتم به كافرون آیا اگر برای شما چیزی هدایت کنند تر از آنچه که نیاکان را بر آن یافتید آورده باشم؟ گفتند آری ما به آنچه که شما به آن فرستاده شده اید کافریم. فانتقمنا منهم فانظر کیف كان عاقبت المکذبین؟ بنابراین از آنها انتقام گرفتیم پس بنگر سرانجام تکزیب کنندگان چگونه بود؟ و اذ قال ابراهیم لعبیه و قومه این منی براؤن من و به یاد آور هنگامی که ابراهیم به پدرش و قومش گفت بیگمان من از آنچه میپرستید بیزارم، مگر آن کسی که مرا آفریده، و او به زودی هدایتم خواهد کرد، وجعلها جعلها کلمتا فی عقبه لعلهم یرجعون،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 بلکه آنان و پدرانشان را از زندگی بهرمن ساختیم تا حق و فرستادی آشکار برایشان آمد ولما ما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وان ما به كافرون هنگامی که حق برایشان آمد گفتند این سحر است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 و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتک و برای خانه هایشان درها و تختهایی های قرار میدادیم که بر آنتیکی زنند و زخرفا و این ذلك لما متاع الحیات الدنیا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 و من یعشو عن ذكر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین و هر کس از یاد خدای رحمان قافل و روی گردان شود برای او شیطانی برمی گماریم پس هموار آن شیطان قرین و همنشین او باشد وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ و آنها اینها را از راه خدا باز میدارند و گمان می که آنان هدایت یافته اند. حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین تا زمانی که در روز قیامت نزد ما آید به هم نشین خود می گوید ای کاش میان من و تو مسافت شرق و غرب فاصله بود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 افا انت تسمع الصم او تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين ای پیامبر آیا تو میتوانی به کران سخنی بشنوانی یا کوران و آنهایی را که در گمراهی آشکار هستند هدایت کنی فَإِنَّ مَا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنھُم مُّنتقِمُونَ پس اگر تو را از این دنیا ببرییم بی ما از آنها انتقام خواهیم گرفت اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِم یا <تصفيق> آنچه که به آنها وعده دادهایم به تو نشان میدهیم پس یقینا ما بر آنها توانا هستیم فاستمسك بالذی وحی الیک انك علی صراط مستقیم پس به چیزی که به تو وحی شده از تمسک بجوی جوی که بیشک تو بر راه راست هستی. و اینهو لذکر لک و لقومک و تسالون و بیگمان این قرآن برای تو بقومت پند و سربلندی است و به زودی باز خواست خواهید شد. واسأل من ارسلنا من قبل من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون و از پیام برانی که پیش از تو فرستادیم بپرس آیا غیر از خدای رحمان معبودانی برای پرستش قرار دادیم و لقد ارسلنا موسى بی آیاتنا الى فرعون و ملئهی فقال اینی رسول رب العالمین و به ما موسى را با نشانه های خود به سوی فرعون و درباریان او فرستادیم پس گفت بیگمان من فرستادی پروردگار جهانیان هستم فلما جاءهم بی آیاتنا ایلا هم منها یضحکون پس چون با نشانه های ما به سوی آنها آمد ناگاه همه از آن خندیدند و ما نوریم من آیة إلا هی أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون و ما هیچ نشان و موجزی به آنها نشان نمیدادیم. مگر اینکه از دیگری بزرگتر و مهمتر بود.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 بی گمان ما هدایت خواهیم یافت فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون پس چون عذاب را از آنها برطرف ساختیم آنگاه آنها عهد شکنی کردند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 فلولا القی علیه اسورتم من ذهب جاء معه الملائکت مقترنین پس چرا بر او دستبند های تلاف رو فرستاده نشده یا چرا فرشتگان صف کشیده همراه او نیامده اند تا او را یاری کنند فَاسْتَخَفْ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ پس فرعون قوم خود را بیخرد و سبک شمرد پس آنها از او اطاعت کردند بیگمان آنها گروهی فاسق بودند فلما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 آنگاه آنها را در شمار گذشتگان و عبرتی برای آیندگان قرار دادیم ولما ضرب بن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون و چون درباره آفرینش فرزند مریم مثلی زده شد ناگهان قوم تو از آن شادی کنان داد و فریاد زدند و قالون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 ان هو إلا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائیل او جزبنده ای نبود که ما بر او نعمت بخشیدیم و او را مایه عبرت برای بنی اسرائیل گرداندیم ولو شَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ و اگر میخواستیم به جای شما فرشتگانی قرار میدادیم که در روی زمین جانشین شما باشند و نه لعلم للساعت فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقیم. و بیگمان آن نشانهای برای قیامت است. پس هرگز در آن شک نکنید و از من پیروی کنید که این راه راست است. ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين و شیطان شما را از راه حق باز ندارد بیگمان او برای شما دشمنی آشکار است ولمّا جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعضا الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون فتن با بالدلائل والمعجزات روشن آمد گفت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 ای گمان الله پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرستید که این راه راست است فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم آنگاه گروه های مختلف بنی اسرائیل میان خود در باری اختلاف کردند پس وای بر کسانی که ستم کردند از عذاب روز دردناک هل ینظرون إلا الساعت ان تأتیهم بغتتا وهم لا يشعرون آیا چیوی جد قیامت را انتظار میکشند که ناگهان و در حالی که بیخبرند به سراغشان بیاید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 ای بندگان من امروز نه ترسی بر شماست و نه شما اندوهگین میشوید الذین آمنوا بآیاتنا وكانوا مسلمین همان کسانی که به آیات ما ایمان آوردند و مسلمان بودند ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون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 بر گرداگرد آنها سینی های زرین و نیز جام هایی می و در آن بهشت آن چه دلها تمنا می کند و چشم ها از آن لذت میبرد وجود دارد و شما در آن همیشه خواهید بود و تعملون و این همان بهشتی است که به پاداش آنچه که انجام میدادید آن را به ارث برده اید لکم فیها فاكهه کثیره منها تاکلون در آن بهشت برای شما میوه فراوان است که از آن میخورید بیگمان فی عذاب جهنم خالدون بیگمان مجرمان در عذاب جهنم جاودانند لا یفتر عنهم وهم فیه مبلسون عذاب از آنها کاهش نمی یابد و آنها در آن از همه چیز ناامید هستند و ما ظلمناهم ولكن کانوهم الظالمین و ما به آنها ستم نکردیم لیکن آنان خود ستم کار بودند و نادو مالك مال کل یقضی علینا ربك قال إنكم ما کسون و آنها فریاد میزنند ای مالک، بخواه که پروردگارد کار ما را یک سره کند و بمیراند او گوید، بیگمان شما در اینجا ماندنی هستید لقد جئناکم بالحق ولیکن اکثرکم للحق کارهون براستی ما حق را برای شما آوردیم ولی کن بیشترتان از حق کراحت داشتید. ام فا مبرمون آیا آنها تصمیم قاطع برکاری گرفتند؟ پس ما نیز تصمیم و اراده قاطع درباری آنها داریم.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 سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون پاک و منزه است پروردگار آسمانها و زمین پروردگار عرش از آنچه آنها توصیف می کنند فذرهم یخوبو و یلعبو حتی یلاقو یومهم الذی یوعدون پس ای پیامبر آنها را به حال خود رها کن تا در باطل قوطه بخورند و به بازی سرگرم باشند تا روزی را که به آنها وعده شده است ملاقات کنند و سزای اعمال خود را ببینند و هو الذی فی السما و في الارض اله وهو و او كسیاست که در آسمان معبود است و در زمین نیز معبود است و او حکیم داناست وتبارك الذی له ملك السماوات والأرض وما بینهما وعنده علم الساعه و عنده علم الساعة و ایلیه ترجعون و پر و بزرگوار است کسی که فرمان روائی آسمانها و زمین و آن که در میان آن دو است از آن اوست و علم برپا شدن قیامت نزد اوست و همه به سوی او باز گردانده ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم و وکسانی را که به جای او میخوانند اختیار شفاعت ندارند مگر کسانی که به حق گواهی دادند و آنان به خوبی میدانند وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وَاگر از آنها بپرسید چه کسی آنها را آفریده است قطعا می گویند خدا پس چگونه از حق منحرف می شوند این قوم لا یؤمنون و شکایت و گفتار او این بود پروردگارا بیگمان این ها قومی هستند که ایمان نمی آورند قطفه عنهم و قل سلام فتوفه یعلمون پس ای پیامبر از آنها درگذر و بگو سلام بر شما پس به زودی خواهند دانه بسم الله الرحمن الرحیم والكتاب المبين. صُجَّن بكتاب رُشَنَّ. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا گمان ما آن را در شب مبارک و فرخنده قدر نازل کردیم بیشک ما همواره هشدار دهنده بودیم فیها یفرق كل امر حکیم در آن شب هر امر با حکمت و استواری، فیصله و تدبیر می شود امرا من عندنا فرمانی از جانب ما بود بیگمان ما فرستنده آن بوده این قَحْمَتَمْ مِنْ رَبِّكْ اِنَّهُو هُوَ السَّمِيعُ از سوی پروردگارت بیگمان اوست که شنوای داناست رب السماوات والأرض وما بینهما ان كنتم موقنین پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دوست اگر شما یقین دارید لا له الا هو و ومی ربکم ورب رب آبائیکم الأولین. هیچ معبودی به حق جز نیست زنده می کند و می, می پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست بل هم فی شکی يلعبون. بلکه آنها در شکند و بازی می کنند پس ای پیامبر منتظر روزی باش که آسمان دودی آشکار پدید آورد یوشما هذا عذاب علیم. که تمام مردم را فرا میگیرد این عذابی دردناک است رب بکشف عنا العذاب اننا مؤمنون آنگاه کافران میگویند پروردگارا این عذاب را از ما برطرف کن بی ما ایمان می آوریم انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین چگونه و از کجا پند میپذیرند در حالی که پیام بر روشنگر برایشان آمد ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون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 يَوْمَ نبطش الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ روزی که به گرفتنین سخت آنها را فرو گیریم بی گمان ما انتقام گیرنده ایم و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم و به راستی ما پیش از آنها قوم فرعون را آزمودیم و پیامبری بری بزرگار به سویشان آمد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 وَأَلَّا تَعَلُوا عَلَى اللَّهِ اِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ و نیز بر خدا بر تری بی تردید من برای شما دلیل روشنی آورده ام و, عزت و, ان و همانا من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه میبرم از اینکه مرا سنگسار کنید وانلم و اگر به من ایمان نمیآورید پس از من کناره بگیرید فدعا ربه انها اولئی قوم مجرمون آمگاه به درگاه پربرد گارش دعا کرد که اینها گروهی مجرمند فَأَثْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ پس به او حکم داده شد بندگان مرا شبانه ببر یقینا شما تعقیب می شوید وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهُوًا اِنَّهُمْ جُنْدُمْ مُغْرَقُونَ و دریا را آرام واگذار بیگمان آنها لشکری غرق شده خواهند بود کم ترکو من جنت و چه بسیار باغها و چشمه ها را بعد از غرق شدنشان رها کردند و زروع و مقام کریم و نیز زراعتها و قصرهای نیکو و زیبا و نعمت فیها فاکهین و نعمتی که در آن شادمان بودند کذالک و اورثناها قوما آخرین این چونین بود و ما همه آنها را به مردمی دیگر واگذاشتیم گذاشتیم فما بکت علیهیم السماء والارض كانوا پس آسمان و زمین بر آنها نگریست و به آنها مهلت داده نشد و لقد نجینا إِسْرَائِيلَ اسرائيل من العذاب المهين و مسلما بني را از عذاب ذلت نجات دادیم من فرعون اِنَّهُ كان عَالِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ از فرآن که او سرکشی از اصراف کاران بود وَلَقَدِ اخترناهم عَلَى علم عَلَى الْعَالَمِينَ و براستی ما آنها را با علم و آگاهی بر جهانیان برگزیدیم و هم من الآیات ما فیه بلاء مبین و از نشانه ها آنچه به آنها دادیم که آزمایش آشکاری در آن بود ان ها لیقولون بیگمان اینها میگویند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 ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون و ما آن دو را جز به حق نیافریدیم ولیكان بیشتر آنها نمیدانند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 و آنها از سوی کسی یاری نمی شوند الا من رحم الله انه هو مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده یقینا او پیروزمند مهربان است ان شجره الذقوم بی گمان درخت زقوم طعام غذای گناهکاران کاران است کلمهلی فی البطون همانند مثل گداخته در شکمها می جوشد کغلی الحمین جوششی همچون آب جوشان خذوه فعتلوه الى سوائی انگاه به فرشتگان می او را بگیرید پس به سختی او را میان دوزخ بکشید ثم صبو فوق رأسه من عذاب الحمیم سپس بر سرش از عذاب جوشان بریزید لقو انك أنت و به او میگوییم بچش که تو به پندار خود پیروزمند بزرگواری این هذا ما کنتم به تمترون بیگمان این همان چیزی است که در آن شک داشتید این المتقین فی مقام امین یقینا پرهیزگاران در جایگاه امنی هستند فی جنت و عیون در میان باغها و کنار چشمه یلبسون من سندس و استبرق متقابلین لباسهای از دیبای نازچ و دیبای زخیم می پوچند روبروی هم می نشینند کذالک وزوجناهم بحور عین بدین سانه است و هوریان گشاد چشم بهشتی را به همسری آنها در می آوریم در آن بهشت با امن و آرامش خاطر هر میب را که بخواهند می طلبند. لا يذوقون فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ الثَّالِثَةَ الأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ در آن بهشت مرگ را نمیچشند مگر همان مرگ نخستین که در دنیا چشیدهاند و خداوند آنها را از عذاب دوزخ حفظ کناد ظُلْمًا مِنْ رَبِّكَ ذلك هو الفوز العظيم. این بخششی است از سوی پروردگارت این همان کامیابی بزرگ است فئنما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون پس ای پیامبر ما آن را به زبان تو آسان کردیم تا که آنها پند گیرند فرتقب انهم مرتقبون پس ای پیامبر منتظر وعده های الهی باش بیگمان آنها نیز منتظرند بسم الله الرحمن الرحیم حامیم. ها مییمتن زیل من الله العزيز الحتیم نازل شدن این کتاب از سوی خداوند پیروز منده حکیم است. این في السماوات والارض لآیات در آسمانها و زمین نشانهایی برای مؤمنان است و فی خلقكم و ما یبث من دابت آيات لقوم و نیز در آفرینش شما و در آن چه از جنبندگان پراکنده می‌سازد نشانه‌هایی است برای گروهی که یقین دارند واختلاف الیل و, و نهار وما انزل الله من السماء من رزق و نیز در آمد و الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفَ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 فبأی حدیث بعد الله وآیاته یؤمنون اینها آیات خداوند است که ما آنها را به حق بر تو میخوانیم پس به کدام سخن بعد از سخن خدا و آیات او ایمان میآورند ویل لكل أفاک ثیم آی بر هر دروغ گوی گناهکار یسمع آیات الله تتلا علیه ثم یصر مستکبرا ثم یصر مستکبرا کان لم يسمعها فبشره بعذاب الیم آیات خدا را که بر او خوانده می شود می سپس متکبران اصرار بر کفر دارد گویی که را نشنیده است پس او را به عذابی دردناک بشارده و اذا علم من آیاتنا شیئن اتخذها هزوه اولئیک لهم عذاب مهیم و هرگاه چیزی از آیات ما را فراگیرد آن را به مسخره میگیرد. اینان برایشان عذاب خار کننده ایست يهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله ولهم عذاب پشت سرشان جهنم است و آنچه را به دست آوردهاند به حالشان سودمند نخواهد بود و نه آنچه به جای خدا برای خود دوست و معبود برگذیده اند آنها را نجات می دهد و برای آنها عذاب بزرگی است هدا والذین كفروا بی ربهم لهم عذاب من رجز علیم این قرآن هدایت است و کسانی که به آیات پرورد گارشان کافر شدند برایشان عذابی از سخترین در عذابهای دردآور است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 فلی نفسه و من اساف علیها ثم ایلی ربکم هر کس کار شایسته ای انجام دهد پس به سود خود اوست و کسی که مرتکب کار بدی شود پس به زیان خود اوست آنگاه همه به سوی پروردگارتان بازگردانده می شوید آتینا بنی اسرائیل الكتاب والحکم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من و, العالمين. و یقینا ما بنی اسرائیل را کتاب آسمانی و حکومت و نبوت بخشیدیم و از پاکیزه ها روزیشان دادیم و آنها را بر جهانیان برتری دادیم و آتینا من الامر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 و آنها را در امر دین نشانه های روشنی عطا کردیم، پس آنها اختلاف نکردند، مگر بعد از برای آنان علم و دانش آمد آن هم از روی تجاوز و ستم به یکدیگر بود بیگمان پروردگار تو روز قیامت در آنکه اختلاف میکردند در میان آنها داوری میکند ثم اجعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون سپس تو را أی يامبر بر راه و روشن از دين قرار دادیم پس از آن روی كن و هوا و حوث های کسانی که نمیدانند پیروی نکن این لن یغنو عن کمین الله شیئه و این الظالمین بعضهم اولیاء بعض والله ولی المتقین بیشک آنها هرگز نمیتوانند تو را از خدا بینیاز نیاز کنند و عذاب او را از تو دفت نمایند و مسلمان ستمکاران برخیشان یاور بر برخی دیگرند و خداوند یاور پرخیزگاران است هذا این قرآن برای مردم مایه بسیرت است و برای گروهی که یقین دارند هدایت و رحمت است. ام حسب الذین اجترحوا السیعات ان نجعلهم کالذین آمنوا, آمنوا و عملوا الصالحات سواء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 پس اگر خدا هدایتش نکند چه کسی به خدا او را هدایت خواهد کرد آیا پند نمی گیرید و قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم و الا و گفتند چیزی جز این زندگانی دنیای ما در کار نیست میمیریم و زنده میشویم و جز طبیعت و روزگار ما را هلاک نمیسازد و آنها به این امر هیچ علمی ندارند و آنها جزوه و گمان نمی کنند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 و هنگامی که آیات روشن ما برانها خانده شود، حجدشان جز این نیست که گویند، اگر راست گویید نیاکان ما را زنده کنید و بیاورید. قل الله یحییکم ثم یمیتکم ثم يجمعكم سم يجمعكم الى يوم القیامت لا ریب فيه ولكن اکثر الناس لا يعلمون ای پیام بر بگو خداوند شما را زنده می کند سپس شما را می باد شما را در روز قیامت که تردیدی در آن نیست جام می کند ولیکن بیشتر مردم نمی دانند وقال لله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعة يوم يخسر المبطلون و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست و روزی که قیامت بر شود، اهل باطل زیان خواهند کرد. و ترا كل امة جاتيه كل امة تداعى إلى كتابها اليوم تجزون ماكون و در آن روز هر امتی را می بینی که به زانو در آمده هر امتی به سوی نامه اعمالش خانده می شود و به آنها گفته می شود امروز در برابر آنچه می کردید پاداش می آبید کتابنا ینطق علیکم بالحق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 این همان کامیابی بزرگ است و اما لذین کفروا تكن لم تکن آیات فاستكبرتم علیکم فاستکبرتم فاستکبرتم و کنتم قوما مجرمین و اما کسانی که کافر شدند به آنها گفته می‌شود آیا آیات من بر شما خاندن میشد؟ پس شما تکبر کردید و قومی مجرم بودید. و اذا قیل این وعد الله حق و لا رب فيها قلتم ما ندري م الساعة این ظن الا ظن قلتم ما ندریم الساعتو این نظنو الا ظننو و ما نحن بمستیقیمین و چون گفته میشود بیگمان بعدی خداوند حق است و در آمدن قیامت هیچ شکی نیست می گفتید ما نمیدانیم قیامت چیست ما فقط گمانی داریم و ما درباری آن یقین کننده نیستیم.